من و انکار شراب این چه قایت باشد غالبا این قدرم عقل و کفایت باشد تا به قایت رحم خانه نمی دانستم ورنم ما تا به چه قایت باشد زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز تا ترا خود زمیان با که نایت باشد ساهد راه برندی نبرد معذور است عشق کاریست که موقوف هدایت باشد من که شبها ره تقوا ام با دف و چنگ این زمان سر برهارم چه حکایت باشد بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند پیر ما هر چه کند عین انایت باشد دوش از این غصه نخفتم که رفیقی می گفت حافظر مصر و جای شکایت باشد.